سلام خدمت همه دوستان و همراهان کانال هزار افسان امروز در خدمتتون هستم تا ادامه داستان زیبای پرنده آبی رو با هم دیگه بشنویم خب داستان رو تا اونجا شنیدیم که شاهزاده دلربا و شاهدخت فیوردلیسا به هم دل میبندند. اما ملکی بجنز که میخواست دختر خودش توریتلا رو به همسری شاهزاده در بیاره شاهدوخت رو به توتعه توی یکی از اتاقهای برج زندانی کرد. از اون طرف هم شاهزاده علارغم همه اصرارها حاضر نشد توریتلا رو به هم سری قبول کنه و پری مازیلا به کیفر این نافرمانی اون رو به مدت هفت سال به شکل یک پرندگی آبی درآورد. آورد. اما فیوردلیسا و شاهزاده باز هم تونستن با همدیگه ارتباط داشته باشند. اما بعد از دو سال، باز هم به مکر و حیله ملکه به راز وجود پرنده آبی پی بردند و به دستور ملکه بجنس درخت سنوبری رو که محل سکونت پرنده بود با داس و تیغ و شمشیر مورد حمله قرار دادند و پرنده بینوا هم 20 قسمت از بدنش آسیب دید و از اونجا که فکر می کرد فیوردلیسا بهش خیانت کرده و به خاطر آزادی خودش مجبور شده محل اختفای اون رو لو بده نامید شد و تن به مرگ سپرد. حالا بریم ببینیم ادامه قصه شاهزاده و شادخت به کجا می رسه. از غذا دوستش افسونگر با دیدن کالسکه ی که بدون پادشاه دل رو با برگشته بود فورا متوجه شد که اتفاق بدی افتاده. اون هش برد. دور جهان چرخید اما موفق نشد پادشاه رو پیدا کنه. اما بار هشتم درست در لحظه ای که پادشاه تسلیم نومیدی شده بود افسونگر به جنگل نزدیک شد و اون رو صدا کرد. اون به هر جایی که در این جهان میرفت اون رو صدا می کرد. دل روبا، پادشاه دل رو اینجا هستی؟ پادشاه فورا صدای دوستش رو شناخت و با صدای نظار جواب داد، اینجا افسونگر به اطراف خودش نگاهی کرد اما اون ندید پادشاه دوباره گفت منم پرنده آبی افسونگر اون رو پیدا کرد و با دیدن وضع رقتبارش بدون اینکه حرفی بزنه به هر طرف دوید و یک مشک گیاه جادویی گرد آورد بعد به کمک گیاهان و با خوندن چند ورد به سرعت سقمای پادشاه رو درمان کرد و تندرستی رو بهش برگردوند اون گفت حالا همه چیز رو برام تعریف کن. به گمانم رد پای شاهدختی در این ماجرا دیده میشه. پادشاه با لبخندی گفت دوتا. بعد تمام ماجرا رو برای افسونگر تعریف کرد و از سخنانش فیردلیسا رو هم متهم کرد که بهش خیانت کرده و برای رهایی از زندان راز دیدارهای پنهانیشون رو فاش کرده. حتی درباره دمدمی مزاج بودن و زیبایی فریبکارانه فیوردلیسا مطالب زیادی گفت. افسونگر کاملا باش موافق بود و حتی پا پیشتر گذاشت و گفت که همه شادخت ها سراته یکر باسن. البته شاید از نظر زیبایی کمی متفاوت باشند. بعد توصیه کرد که با قضیه فیوردلیسا کنار بیاد و همه چیز رو فراموش کنه. اما این توصیه چندان به مزاق پادشاه خوش نیومد. افسونگر پرسید: خب حالا چیکار کنیم؟ هنوز پنج سال باقی مونده و تو باید پرنده آبی بمونی. پادشاه جواب داد: منو به قصرت ببر. در اونجا دست کم میتونی منو توی یه قفس سالم و دور از خطر حمله گربه ها و آسیب شمشیرها نگه داریم. دوستش گفت: بسیار خب، این بهترین کاریه که فعلا میتونیم انجام بدیم. اما من افسونگر به درد نخوری نیستم. با اطمینان میگم قبل از اینکه دیر بشه فکر درخشانی برات میکنم در این اسنا، فیوردلیسا کاملا نامید شب و روز کنار پنجره مینشست و پرندگی آبی رو صدا میزد اما بیفایده بود بارها و بارها پیش خودش فکر کرد که حتما بلای ناجوری به سرش اومده از شدت اندوه رنگ پریدو و لاغر شده بود ملکه و توریتلا خودشون رو پیروز میدونستند که البته دوره پیروزیشونم کوتاه مدت بود چون پادشاه پدر فیوردلیسا به سختی مریض شد و در بستر بیماری مرد مردم علیه ملکه و توریتلا سر به شورش برداشتند و به طرف قصر رفتن و فیوردلیسا رو صدا زدند ملکه به محتابه قصر اومد و کلماتی رکیک به زبون آورد و همه را تهدید کرد مردم بالاخره کاسه صبرشون لبریز شد و دروازه ها رو شکستند و پا به درون قصر گذاشتند. در اونجا هم درها رو شکستند. یکی از درها به سر ملکه فرود اومد و اون رو در دم کشت. طریطلا به سمت پریمازیلا فرار کرد. بزرگان به برج رفتند و شاهدخ فیوردلیسا رو آزاد کردند. بعد اون رو به قصر آوردند و به جای ملکه نشوندند. اونها خیلی زود با نهایت احترام تاج و تخت رو بهش سپردند. شاه دخت هم بعد از اصارتی طولانی حالش بهتر شد و زیبایی خودش رو به دست آورد و حتی زیباتر از قبل شد. کم کم توانایی لازم رو پیدا کرد تا در جلسه ها با مشاوران دربار حضور پیدا کنه. وقتی همه چیز مرتب شد و اوزار رو برای اداره کشور در قیاب خودش آماده دید، کیسه ای پر از جواهر برداشت و برای پیدا کردن پرنده آبی به تنهایی راهی سفر شد. به کسی هم نگفت که کجا میره. طی این مدت، افسونگر به دقت از پادشاه دلربا مراقبت میکرد. اما چون قدرتش کافی نبود تا از پس ترفندهای پریمازیلا بر بیاد، تصمیم گرفت به خاطر دوستش با پریمازیلا کنار بیاد. حالا شما عزیزان متوجه خواهید شد که پریان و افسونگران تا حدودی با هم خموخی اونها همدیگر رو به خوبی میشناسند و به خاطر یک آشنایی 500 یا 600 ساله و بعد از دعوا و مرافعه بسیار با هم کنار میان. پری مازیلا افسونگر رو به گرمی و مهربانی پذیرفت و گفت خب گاسیب از من چی میخوای؟ اون جواب داد میدونم که اگه بخوای میتونی لطفی به من بکنی. پادشاهی که از دوستانم هست از وقت بدش به تو اهانت کرده. پری حرفش رو قطع کرده گفت: آها، میدونم منظورت کیه. گاسیب، متاسفانه نمیتونم برات کاری کنم. هیچ راهی برای بخشش اون وجود نداره، مگر اینکه با دختر خوندم ازدواج کنه. اون بسیار زیبا و جذابه. بهتره تا خودش در این باری فکر کنه. افزونگر حرفی برای گفتن نداشت. چون میدونست که توریتلا واقعا هراسانگیزه. اما دست از تلاش برنداشت و بار دیگه دست بکار شد. دوستش پادشاه واقعا در خطر بود و بیش از این نمیتونست در قفس بمونه تا همین حالا هم با حوادث خطرناک زیادی روبرو شده بود. مثلا یک بار میخی که در سق فرو کرده بودن و قفس از اون آویزون بود کنده شد و بر اثر سقوط قفس علا حضرت پرنده آسیب دیده بود. تازه، همون موقع با نوپیشی که از سر اتفاق گزارش به اتاق افتاده بود به سر پرندگی بدبخ پنجول کشیده بود و چیزی نمونده بود که اونو کور کنه. یک دفعه هم فراموش کردن توی قفص پرنده آبودون بذارن و نزدیک بود پرنده از سشنگی بمیره و بدترین اتفاق از دست دادن سرزمین و, تاج و تختش بود چون به خاطر قیبت بسیار طولانیش تمام رعایاش باور کرده بودند که اون مرده. بعد از توضیح همه این وقایه پریمازیلا موافقت کرد که پادشاه رو به شکل اولش برگردونه ولی اگه اون باز هم نتونست برای ازدواج تصمیم بگیره پریمازیلا دوباره اون رو به شکل پرنده آبی تبدیل میکنه پری ردایی از تلا و نقره به تن تلا کرد و با هم سوار یه اجدهای پرنده شدن و خیلی زود به قصر پادشاه رسیدند. رسیدندا دوست وفادارش تازه اون رو به اونجا آورده بود. سه ضربه چوب دست جادوی پری پادشاه رو به شکل طبیش برگردند. مثل همیشه زیبا و دلنشین بود. با نگاهی به طوری متوجه شد که برای بازگشت به ظاهر اصلی خودش باید بهای های سنگینی بپردازه. فکر ازدواج با اون تمام وجودش رو میلرزوند در این بین، ملک فیوردریسا خودش رو به صورت دختر روستایی بی‌نواعی در آورد. اون کلاه حسیری بزرگی که چهرش رو می‌پوشوند به سر گذاشته بود و کیسه کن هم به شونه انداخته بود. اون سفری طاقت فرسا را آغاز کرد و تا سرزمین های دور هم پیش رفت. گاهی از راه دریا، گاهی در خشکی، گاهی پیاده و گاهی سوار به اسب، بدون اینکه بدونه به کجا میره. همیشه هم از این میترسید که با هر گامی که بر می از دلارش دورتر بشه. روزی در حالی که خسته و اندوگین در کنار جویباری نشسته بود و باهاش رو توی آب خونک رود گذاشته بود و گیسوان بلندش رو که مثل طلا در زیر نور خورشید میدرخشیدند شونه میکرد، پیرزن قوزی کوچک اندامی از سازنان از کنارش میگذشت. اون استادو به فیردلیسا گفت عزیزکم چرا تنها اینجا نشستی؟ اون جواب داد مادر خوبم. راستش رو بخوای خیلی غمگینم و به دنبال همزبان میگردم و قطرات اشک به روی گناهاش جاری شد. پیرزن گفت گریه نکن. بگو چه مشکلی داری؟ شاید بتونم کمکت کنم. ملکه با کمال میل هرچی رو که اتفاق افتاده بود تعریف کرد و در آخر هم گفت که در جستجوی پرندگی آبیه. پیرزن کوچیک یک دفعه صاف سر جاش ایستاد قدش بلند شد. جوان و زیبا شد. و با لبخندی به فیوردلیسای مبهوت گفت ملکه زیبا. پادشاهی که دنبالش هستی دیگه پرنده نیست. خواهرم مازیلا اون رو به شکل اولش برگردونده و اون حالا در سرزمین خودشه. نترس. بهش میرسی و خوشبخت میشی. حالا این چهار تخمه رو بگیر. هر وقت به مشکل بزرگی برخوردی، یکی از اونها رو بشکن به تو کمک میکنه بعد از گفتن این حرفها پیرزن ناپدید شد و فیوردلیسا که حالا دل و جرعتی پیدا کرده بود تخم مرغ ها رو توی کیسه گذاشت و به سمت سرزمین پادشاه دلربا رفت بعد از هشت شب و هشت روز پیاده روی بالاخره به تپهای بسیار بلند از آج براق رسید که شیب تندی داشت و نمیشد قدمی به روش گذاشت فیردریسا هزار بار سعی کرد. هر بار سر میخورد و سقوط میکرد و به جای اول خودش برمیگشت. بالاخره ناامید و دل سرد در پای تپه نشست. یک دفعه بیاد تخم مرغا افتاد. یکی رو شکست. توی اون چند قلاب طلایی بود. اونها رو به پاها و دستاش بست و پا به روی تپک آج گذاشت و بدون درد سر پیش رفت. چون قلابها مانع از سر خوردنش میشدند. همین که به بالای تپه رسید، مانع دیگری در برابرش قد علم کرد. تمام اطراف و در واقع تمام دره آینه سیقلی یک پارچه‌ای بود که هزاران هزار نفر از دیدن تصویر خودش در اون لذت می‌بردند و خود را ستایش میکردند. آینه جادویی بود و مردم خودشون را همون که دلشون میخواست میدیدند. زائران از چهار گوشه جهان به اونجا میومدند. اما هیچ کس نتونسته بود به بالا تپه برسه و موقعی که اونها فیوردلیسا رو در اون بالا دیدن فریادهای وحشتناکی سردادند و گفتن که اگر پای به شیشه بگذاره اون رو تکه تکه خواهند کرد. ملکه نمیدونست چیکار کنه. پایین رفتن واقعا خطرناک بود. پس تخم مرغ دوم رو شکست. یک دفعه از توی اون کالسکی بیرون اومد که دو کبوتر سفید اون رو میکشیدند. فییوردلیسا سوار شد و کالسک به نرمی در هوا به پرواز درآمد و پیش رفت بعد از یک شب و یک روز کبوتران پشت دروازی پادشاه دلرو با فرود اومدند ملکه پیاده شد کبوتران رو بوسید و از انا سپاسگذاری کرد بعد با قلبی تپنده وارد شهر شد از هر کسی که میدید میپرسید کجا میتونه پادشاه رو ببینه اما همه میزدند زیر خنده و با فریاد میگفتن پادشاه رو ببینی دختره که آشپز باشی، لطفا بگو برای چی میخوای پادشاه رو ببینی. بهتر بری صورت تو بشوری تا چشمات سوی کافی برای دیدن اونو داشته باشه. ملکه ظاهرش رو عوض کرد و موهاش رو روی چشماش کشید تا کسی اونو نشناسه. چون کسی اطلاعی بهش نداد، کمی جلوتر رفت و دوباره سوالش رو تکرار کرد. این بار، بهش گفتند که فردا میتونه پادشاه رو که سواره به همراه شاهدخ تلا از خیابونها میگذره ببینه بهش گفتند که پادشاه بالاخره رضایت داده با اون ازدواج کنه این اخبار واقعا برای فیوردلیسا وحشتناک بود آیا اون تن به این سفر سخت و طولانی داده بود تا بیاد و ببینه که توریتلا بالاخره موفق شده کاری کنه تا پادشاه با اون رو از یاد ببره اینقدر در درمونده بود که نمیتونست قدم از قدم برداره پس کنار دری نشست تمام شب به تلخی گریه کرد هوا که روشن شد با عجله به قصر رفت و با اینکه پنجاه مرتبه نگهبانها اون رو را ندادند بالاخره وارد قصر شد در تالار بزرگ تخت شاهی رو دید که برای پادشاه و توریتلا که بالاخره ملکه شده بود در آنجا گذاشته بودندو خودش را در پشت ستونی مرمرین پنهان کرد. خیلی زود چشمش به توریتلا افتاد که لباسی شکومند پوشیده بود و مثل همیشه زشت بود. پادشاه در کنارش حرکت میکرد. اونقدر زیبا و با شکوف شده بود که فیوردلیسا بیاد یاد آورد اون رو هیچوقت اینطور دیده باشه. همین که توریتلا روی تخت نشست، فیوردلیسا بهش نزدیک شد. توریتلا گفت، تو کی هستی؟ و چطور جرأت کردی در پای تخت زرین من حضور داشته باشی و نگاه اخمالود و خشناکی بهش کرد. اون جواب داد: همه من و دخترک آشپز باشی حقیری میدونند. من به اینجا اومدم تا چند چیز با ارزش و گرانبها به شما بفروشم. با گفتن این حرف دست در کیسه کهنه‌اش کرد و زم زمرد رو که پادشاه دلربا بهش داده بود درآورد. آورد. تلا گفت: فای به واقعا قشنگن فکر میکنم اونا رو به پنج سکه نقره بفروشی ملکی گفت اونها رو به جواهر نشان ماهری نشون بده بعد درباره قیمتش صحبت میکنیم توریتلا که کشته و مردگ پادشاه دلربا بود و همیشه دنبال فرصت مناسبی برای حرف زدن با اون میگشت علنگوها رو نشونش داد و قیمتشون رو از اون پرسید پادشاه همین که آلنگو رو دید و به یاد آورد که خودش اونها رو به فیورد لیسا داده، رنگ به رخسارش نموند و آهی عمیق کشید. افکار غم به ذهنش اومد و نتونست جوابی بده. توریتلا دوباره پرسید و اون با تلاش بسیار گفت: مطمئنم که این آلنگو ها به اندازه‌ی وسعت سرزمینم ارزش دارن. فکر می کردم فقط یک جفت از اونها در دنیا وجود داره، اما ظاهراً یکی دیگه هم هست. بعد توریتلا رو به فیوردلیسا کرد و پرسید آخرین قیمت پیشنهادیش چقدره اون جواب داد: بانو بیشتر از اونچه بتونی پرداخت کنی اما اگر اجازه بدی امشب در سرای پشواکا بخوابم زممررد ها رو به شما میدم توریتلا گفت با کمال میل دختره که آشپز باشی و از این معامله بسیار زوق زده شد پادشاه اصلا نمیخواست بدون اون الگو از کجا پیدا شدن از گفتگو با توریتلا متنفر بود و سعی می‌کرد تا جایی که امکان داره باش هم صحبت نشه اون وقتی پرندگی آبی بود راجب سرای پشواگ ها به فیورددیس ها چیزهایی گفته بود سرای پژوگ ها اتاقی کوچیک در پایین اتاق به پادشاه بود و چنان ماهران ساخته شده بود که آرام زمزمه در اونجا به وضوح در اتاق ها پادشاه شنیده می شود. فیوردلیسا که میخواست اون رو به خاطر بی‌وفایی‌ش به باد سرزنش بگیره، راهی بهتر از این به فکرش نمیرسید. بعد موقعی که به دستور تولیترا اون رو به اون اتاق بردن، شروع به گریه زاری کرد و تا روشنای روز دست از گریه زاری بر نداشت. تریتلا از نوکرانش پرسید که دخترک تگ نالوزاریش چی گفته و اونها چی شنیدن. بعد خودش هم از فیوردلیسا درباره حرفهایی که زده بود سوال کرد. اون جواب داد که خواب میدیده و با صدای بلند صحبت میکرده از بخت بعد اون پادشاه هیچی نشنید چون پیش از خوابیدن جرئهای داروی خوابآور میخورد و تا طلوع خورشید از خواب بیدار نمیشد ملکه اون روز رو با نگرانی بسیار گذروند با خودش میگفت یعنی yani, حرفام رو شنیده و انقدر بیتفاوته اگه حرفام رو نشنیده باشه چطور فرصت دیگهای به دست بیارم درسته که مقدار زیادی جواهر دارم اما اینها چیزایی نیستن که نظر تریترو رو به خودشون جلب کنن دوباره یاد تخم مرغها افتاد یکی از اونها رو شکست از درون اون یک کالسکه کوچیک فولادی براق که طلاکاری شده بود و شش موش سبز اون رو میکشیدند بیرون اومد موشی به رنگ گل سرخ کالسکران و موشی خاکستری سری جلودار اون بود توی اون آدم های بسیار ریز و جذابی در حال پایکوبی و کارهای شگفتانگیز بودن. فیوردلیسا وقتی عظمت این هنر جادویی رو دید دستاش رو به هم زد و از شادی به جنب جوش در اومد. شب که شد به باغ رفت و پا به راه درختی گذاشت. میدونست که توریتلا از اونجا میگذره. حرکت موشها رو کمی کند کرد. بعد آدم ریزه ها آماده نمایش خودشون شدن. توریتلا از راه رسید و چشمش به اون صحنه افتاد. یک دفعه با تمام وجود فریاد زد دختره که آشپز باشی در ازای این کالسکه چی میخوای؟ و ملکه جواب داد اجازه بده یک شب دیگه هم در سرای پجواکا بخوابم. توریتلا با رضایت خاطر گفت بیچاره تقاضات رو رد نمیکنم. بعد بعد به ندیمهاش کرد و زمزمهکنان کنان گفت این احمق نمیدونه چطور از فرصتاش استفاده کنه که البته اینم به بهنف منه وقتی شب از راه رسید فیوردلیسا هر چی سخن دلنشین و آشقانه بود به زبان آورد اما افسوس نتونست کاری از پیش ببره چون پادشاه با خوردن داروی آور به خواب سنگینی فرو رفته بود یکی از نوکران گفت دخترک روستایی حتما دیوونه است یکی دیگه گفت اون چیزی که میگه واقعا قمانگیز و رقتباره فیوردلیسا با خودش فکر میکرد پادشاه حتما بسیار سنگدل شده و گرنه با شنیدن نالهاش باید بهش توجه میکرد. حالا دیگه فقط یک فرصت براش باقی مونده. آخرین تخم مرغ شکست و با کمال شادی دید که چیزی بسیار جالب تر از قبل درون هست. کلوچه که به شکل شش پرنده درست شده و با اینکه کاملا پخته شده بود ولی پرنده ها زنده بودند ترانه میخوندند و صحبت میکردند. اونها به هر سوالی جواب میدادن و با مهارت طالبینی میکردند. فیوردلیسا این گنج رو برداشت و بار دیگه در تالار بزرگ که مطمئن بود توریتلا به اونجا میاد منتظر موند. اونجا نشسته بود که یکی از زیردستان پادشاه اومد جلو گفت دختره آشپز باشی خیلی خوبه که پادشاه هر شب داروی خواب آور میخوره وگرنه مجبور بود تمام شب از صدای نالوزاری تو بیدار بمونه. اینجا بود که فیردلیسا فهمید چرا پادشاه بهش توجهی نمیکنه بعد یک مش مروارید و الماس از کیسهش در ورد و گفت اگر کاری کنه که پادشاه امشب داروی خواب آور نخوره اینها رو به تو میدم خدمتکار گفت قول میدم در این لحظه سرکله توریتلا پیدا شد اون با همون اولین نگاه به کلوچه عجیب با اون پرنده های زیبای کوچیک فریاد زد چه کلوچه یه فوقلادهی؟ لطفاً بگو در ازای اون چی میخوای؟ اون جواب داد همون خواسته همیشگی میخوام یک بار دیگه هم در سرای پیشواکا بخوابم توری تلای گفت با کمال میل فقط کلوچه رو به من بده وقتی که شب شد ملک فیوردلیسا منتظر مون تا همه کسانی که توی قصر بودن به بستر برن بعد درد دلهای خودش رو شروع کرد آه دل با چه کار کردم که منو از یاد بردی و میخوای با توریتلا ازدواج کنی ای کاش میدونستی که چقدر زجر و عذاب کشیدم و چه راه طولانی و سختی رو برای پیدا کردنت پیمودم حالا بدونید که خدمتکار سر قول خودش مونده بود و بهجای داری خواب آور به پادشاه دلربا یک لیوان آب داد اون کاملا بیدار در بستر دراز کشیده بود و کلمه به کلمه حرفهای فیوردلیسا رو میشنید رو شناخت اما نمی دونست صدا از کجا میاد. بیاد نمی آورد که نشانی سرای پجواک ها رو به شاه داده باشه. اون گفت ای شاه با اینکه میدونستی می دونستی دیوان وارد دارم. چطور تونستی به من خیانت کنی و منو به دشمنان ستم کارمون بفروشی؟ فیوردلیسا حرفاشو شنید و زود جواب داد دنبال دخترک آشپز باشی بگرد. اون همه چیز رو برای توضیح میده. پادشاه با عجل زیاد به دنبال خدمتکارانش فرستاد و گفت دخترک آشپزباشی رو پیدا کنید و فوراً به حضورم بیارید. اونها جواب دادن خیلی ساده است. اون الان در سرای پشباک پادشاه پادشاه از شنیدن این حرف گیج و مبود شد. چطور ممکنه که شاهدختی زیبا مثل فیوردلیسا دخترکی آشپزباشی شده باشه؟ یا چطور امکان داره که دخترکی آشپز باشی صدای شخصی مثل فیوردلیسا رو داشته باشه با عجل لباس پوشید و از پلههای پنهانی کوچیکی که به سرای پژواکا منتهی میشد پایین رفت در اونجا شاه دختر رو روی بستری از نازبالشا دید اون لباس مبدل زشت خودش رو دور انداخته و جامعه ابریشمین سپیدی پوشیده بود گیسوان طلاییش در زیر نور ملایم چراغ درخشید. پادشاه از دیدنش از شادی در پوست خودش نمی‌گنجید. خودش رو به پاهاش انداخت و هزاران سوال ازش پرسید بدون اینکه فیوردلیسا فرصت کنه به یکی از اونها جواب بده. فیوردلیسا هم به همون اندازه از دیدن پادشاه شادمان شده بود. هیچ چیز اونها رو آزار نمیداد مگر یاد پریمازیلا. همون موقع افسونگر به همراه یک پری مشهور همون که تخم مرقه ها رو به فیوردلیسا داده بود از راه رسیدند. اونها بعد از احوالپرسی پرسی با پادشاه و ملکه گفتند که چون تصمیم گرفتن به پادشاه دل کمک کنن قدرت پریمازیلا کم شده و اون دو نفر باید فورا با همدیگه ازدواج کنن. دیگه خودتون میتونید شادی پادشاه رو از شنیدن این حرف تصور کنید. روز بعد این خبر در تمام قصر پیچید و هر کس فیوردلیسا رو می دید بلا فاصله دوستارش می شد. وقتی توریتلا با خبر شد که چه اتفاقی افتاده دوان دوان اومد پیش پادشاه. همین که چشمش به فیوردلیسا افتاد تا حد جنون خشمین شد. اما قبل از اون که کلمهی به زبان بیاره، افسونگر و پری مهربان، اون رو به جغد قهوهی بزرگی تبدیل کردن. از یکی از پنجرهای قصر هوهو هو کنان بیرون پرید و ناپدید شد. جشن عروسی بسیار با شکوهی برپا شد و پادشاه دل رو ملکه هم ملک فیوردلیسا سالهای سال با خوشبختی زندگی کردند. این هم از آخر و عاقبت خوش شاهدخت و شازاده. انشالله که همه شما خوش باشید. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین‌های سحرآمیز سفر کنیم؟ جایی که ها و ها زندگی می‌کنن؟ کانال هزار افسان، همونیه که دنبالشین، همون. دنبال. جایی که داستان‌های افسانه‌ای و اسطورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه. کانال تلگرامی هزار افسان